در کتاب چهره ی درخشان قمر بنی هاشم حضرت ابالفضل اقربونه اسمت بر برم والله گفتم این چراغارو خاموش کنن خجالت نکشید امشب ببین میتونی مشکلات رو حل کنی از اینجا جواب بدی در کتاب چهره ی درخشان قمر بنی هاشم حضرت ابالفضل اجده یا ربانی خلخالی یا خلخالی آی ربانی. ربانی این مطلب نوشته مسیحی مسیحی راننده کامیونه میگه ایام آشورا و تاسوها بود مدرسه تحتیل بود دخترش این شب سالم تحتیل بود گفتم منم که مسیح کاری ندارم زن و بچه بر میدارم میرم من در باس هم یه تفریه میکنن هم یه تفریح میکنن از اون ور بار میزنم میام می تهران هم تفریه هم, هم کاری تفرجه میگرفتم رفتم اسکله بندر عباس بار زدم روز تاسو آه بود حرکت کردم رفتم اسکله بار زدم حرکت کردم بیست و بار میگه از تو کمربندی بندر عباس که میرفتیم دست دسته های دارن زنجیر میزنن سینه میزنن پرچمای یا بلفز لود دست گرفتن. علم میگشن <تصحیح> آخه، <آخی. آخی. تصحیح> گفتن حجزه علی علمدار امام حسین دیده <تصحیح> گفت دختر بچه هم یه نگاه کرد گفت بابا گفتم جونم بابا گفت بابا اینا چرا دارن با زنجیر به خود جون میزنن اینا چرا دارن تو سینه آشون میزنن گفتم دخترم ما مسیح هستیم اینا مسلمونن اینا شیعان اینا یه امامی دارن به نام حسین. اینا یه امامی دارن به نام حسین این حسین یه برادر داره به نام ابلفرد اصلا قصدم این نبود به خدا روزیته یا قمر بنی ماجه گفتم دخترم اشیعای امامی دارن به نام حسین مثل فردا کش نمیشیم یه برادری داره به نام ابل فاز این ابل مثل فردا در رکاب برادرش نمی حسین می شهادت میرسه و کش میشیم دخترم گفت بابا فردا کشته میشن اینا چرا الان دارم سینه میزنن رفتم دخترم از بس از بس آقا ابل داره خونه که خدا آبرو داره روز تاسو رو به نام این ابلفض مردم از میکنن میگه دختره کچه که یه دونه بچه از کنجکاوه میگه همیطور که از کرد شهر اومدیم بیرون از بندر ربانست گفت بابا بابا این آقا ابل فضل که میگی میشه بیشتر ازش برام تعریف کنی <تصفيق> گفتم دو ما مسیح هستیم تا اونجایی که من میدونم خیلی از ما مسیح هم اگه گرفداری داشته و جن در خونه ابل فاز میرم توش تعریف میکردم بین حرفام میگفتم دخترم مسلماناشیه ها میگن ابلفض با قیرت میگن ابلفض پناق بیپنان میگن ابلفض گره های بزرگو باز میکنم همینطور براش گفتم اومدیم یه مقدار را که اومدیم نخ درم رفت تو جا خواب ماشین گفت بابا من خوابم میاد رفت تو جا خواب ماشین خوابید منم پشت فرمون خانمم هم نشسته بود کنار دستم تو اونایی که رفتن را بندر عباس من اصلا راننده ها خوب میدونم تو اون گردن های سخت اون پیچای می سخت میگه با 25 شیش تن بار یه وقت متوجه شدن ماشین ترمز نداره تو رو خدا خوب گوش کن آدرسش هم بهت دادم خواستی بریم مطالعه کنی میگه یه مرتبه متوجه شدم ماشین به این سنگینی با این طولو ارزیدم ماشین ترمز نداره رنگ از صورتم پرید گفتم خدایا چی کنم خانومم متوجه شد دست باچه شدم گفت شوهرم چی شده گفتم خانومم بلند حرف نزن دخترم بیدار میشه تازه خوابش بردم خانمم ماشین ترمز نمیگیره ترمزش بریده ای به فنی به هم زده با این سرعت آور میگه تا گفتم ماشین ترمز نمیگیره دیدم خانمم شروع کرد گریه کردن یه نگاه تو صورت مرمی میکرد برمیگش یه نگاه به بچه میکه. میکرد بهش گفتم خانم, خانم دست دستباچه نشون الان بچه هم دستباچه میکنی ناراحت میشه از خواب بیدار میشه میگه هر لحظه سرعت ماشین بیشتر میشد الله اکبر التماس دعا نگفته میدونم دلی نیست توی این که نشکنه چشمی نیست که بار نشه التماس دعا دارم میگه همینطوری که ثانیه ها میگذشت سق خانمم گریه میکرد این وقت رو کرد به من گفت شوارم یعنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد انجام بدی. گفتم نه ماشین که ترمز نداره چکنم گفتم یه مرتبه دیدم صدای دخترم آروم بلند شد گفتم بابا گفتم جونم بابا گفتم بابا ماشین ترمز نداره گفتم نه با از جا خواب اومد پایین کنار دستم اصطاد یه نگاه کرد دیده هم من دارم گریه میکنم هم مادرش دیدم بغز گلوی دختر بچه رو آی اونایی که گره تو کارتون افتاده کجا نشستید؟ عزیز از دست داده ها کجا نشستید؟ داغ دیده ها کجا نشستید؟ میگه دیدم بوزگلو دخترم رو گرفته آروم آروم داره عشق از یک گوشه های چشمش میریزم یه چند ثانیه این گذشتش رو کرد به من گفت بابا باب. گفتم جونم بابا گفت بابا جونم بابا دیدم به سختی داره حرف میزنه گفتم جونم عزیز دلم گفت بابا آیا اون عمل فضلی که گفتی به داد ما میرسه یا نه یه گفتم بابا اون ابل فزدی که گفتم برای شیه ها اون بابا مگه خودت نگفتی هر کسی به در و دست خالی بر نمیگرده میگه یه مرتبه انگار نور امیدی در دلامون پیدا شد خانمم گفت شوهرم حالا بیا یه مرتبه درست ما مسیح هستیم بیا یه مرتبه سه نفری با هم صداش میزنیم آخه این اگه اول منو از این گرفتاری نجات بده به خدا میرم شیعه میزم <تصفيق> گفتم خانومم ما که مسیح ماشیه نیستیم یعنی که گفت شوهر امالا چه این داره؟ بیا یه مرتبه سدنش بزنیم شاید جوابمون رو بده برید ببینید این مطلب رو دارم براتون تعریف میکنم آدرس کتابشو دادم میگه یه مرتبه نگاه هم گره خور ستایی بلند با هم گفتیم یا اول میگه تا گفتیم یا اول فت یه وقت دیدم دوتا دست بریده مقابل ماشی ها دیگه ما میگه دیدم دو تو دسته بریده کار مقابل ماشین گره ماشینم ایستداد هدایتش گردم کنار یاداتنم همه ماشیینایی کسب پای سر رو جلو می چه که اتفاق افتاد همه ایستادن همه اومدن دور بر ما از ماشین بیاده شدیم نمیی چی شد چی کردیم هرچی می سالال میگردم دخدارن می مردم به خدا ما آزاد شده ی عمل فضلی آی مردم به خدا عمل ما مرا نجات داده دو تو دست بریده خودم دیدم هم خانم هم دید هم دکتر هم دید. ماشین رو تعمیر کردیم یکی دو روز گذشت. اومدیم به اولین شهری که رسیدیم سراغ منزل یکی از علما رو گرفتیم اومدیم گفتیم آقا ما مسیح ازیم میخوام شیعه بشیم گفت شیعه میخواید بشید ایام آشوران آیا اتفاقی افتاده؟ میگه دخترم میگه نگاه کرد گفت آقا به خدا نبودی ببینی دوتو دو دسته یا یه بلفز مرا نجان داد یا قبر بلی اینا که همشون شیعه اینا که امشور دوست شما آقا یا قمره بلیاجه خیلی باب آجات همه آلم یان عباسه ذکر جن و ملک و آدم یان عباسه اینا که امشور گفتم بزر این مجزه رو بگم با چشم عشقالود بقیه مگرس ادامه بدی. بر سر قصر سلیمان نبی حک کردن سر در قصر سلیمان نبی حک کردن پادشاه همه پادشاه ها بوده گفتن ما به یوسف به خدا کامل تفیز. گفتن ما به یوسف به خدا کملطفی. تفیز. تا که سر سلزله یم